ریچل دوشنبه 15 جولای 2013، صبح امروز صبح درست وقتی داشتم آپارتمان رو ترک میکردم کتی صدام کرد و محکم بغلم کرد فکر کردم میخواد به هم بگه که در هر حال پرتم نمی کنه بیرون اما به جاشی یادداشت تایپ شده گذاشت توی دستم و به هم اعلام رسمی اخراجم رو داد که توش تاریخ خالی کردن اتاق نوشته بود نمیتونست به هم نگاه کنه خیلی دلم برایش سوخت واقعاً دلم برایش سوخت ولی نه اونقدری که برای خودم لبخند غمگینی زد و گفت متنفرم که دارم این کارو بهت میکنم ریچل واقعاً متاسفم در کل احساس کردم خیلی ناشیانه است ما توی حال وایس که برخلاف نهایت تلاشم برای تمیزکاری هنوز یه ذره bụi داد. دلم میخواست گریه کنم اما نمیخواستم کاری کنم که احساسی بدتر از اون چیزی که حالا داشت پیدا کنه بنابراین با گشه روی فقط لبخند زدم و گفتم نه نه اصلا واقعا مشکلی نیست انگار که اون ازم خواسته تا کار کوچه که به نفش بکنم توی قطار اشکام میریخت و مراقب نبودم که کسی منو میبینه یا نه شاید مردم فکر میکردن سگم رفته زیر ماشین یا اینکه تشخیص دادن یه مرض سبول علاش دارم. ممکنه نازا باشم. متعلقه. و به زودی یه کارتون خواب الکلی مزخر است. وقتی بهش فکر می چطوری خودمو رو به اینجا رسوندم؟ موندم از کجا شروع شد؟ موندم توی کدوم نقطه باید این روند و رو متوقف کنم. من از کجا مرتکب اشتباه شدم؟ وقتی با تام آشنا شدم و اون از قما اندوه بعد از مرگ پدرم نجات داد؟ نه وقتی که ازدواج کردم سبکبار بار لب و لب از خوشی توی یکی از روزای زمستونی مهمه هفت سال پیش؟ نه اون موقع خوشحال بودم دست و دلباز و موفق وقتی که نقل مکان کردم به خونه پلاک بیست و سه خونه جادار دل تر از چیزی که تصور می کردم توی سن حساس بیست و سالگی فکر می کردم آیا بتونم توی زندگی کنم؟ نه تو اون روز نبود. روزهای اول و به وضوح یادمه. این اونور خونه را میرفتم رفتم. بی کفش. گرمایی تخت چوبی زیر پا ما حس می کردم. از طعم فضا خلع تمام این اتاقایی که در انتظار پر شدن بودن لذت می بردم. من و توام نقشه میکشیدیم توی باغ چی بکنیم؟ روی دیوارا چی آویزون کنیم؟ اتاق اضافی رو چه رنگی کنیم؟ همیشه. حتی بعدا تو ذهنم اتاق بچه بود. شاید بعدش بود. شاید این مال لحظه بود که همه چی ذره ذره به سمت اشتباه پیش رفت. لحظه ای که من تصور کردم ما خانواده نمیشیم. ما فقط یه زوج و بعدش یه تصویری توی سرم اومد که میگفت دو نفر بودن کافی نیست. یعنی این بعد از وقتی بود که تام یه جور متفاوت به هم نگاه میکرد، انعکاس اقاس ناامیدیش رو توی من میدید. حال به خاطر من کوتاه اومد. به خاطر با هم بودنمون، من. گذاشتم فکر کنه وجود اون کافی نیست برام. من گذاشتم اشکام بریزه. به نورس رسیدیم. بعدش خودم رو جمع جور کردم. چشامو پاک کردم و پشت نامه اخراج کتی شروع کردم به نوشتن یه لیست از کارهایی که امروز باید انجام میدادم. کتابخونه هولبورن، ایمیل به مامان، ایمیل به مارتین، معرفی نامه، پیدا کردن جلسات ترک اعتیاد مرکز لندن آشپوری. به کتی برای کار بگم وقتی قطار روی علامت متوقف میشه نگاه میکنم و میبینم جیسون توی تراسه به پایین نگاه میکنه به خطا آهن احساس میکنم درست داره به من نگاه میکنه و من عجیب ترین حسو دارم احساس میکنم انگار اون هم اینجوری به من نگاه کرده احساس میکنم انگار واقعا منو میبینه تجسم میکنم که داره بهم لبخند میزنه و به دلایلی احساس ترس میکنم اون برگشت و قطار حرکت کرد اصر نشستم توی بخش مراقبت های ویژه بیمارستان دانشگاه وقتی که داشتم از خیابون گریزین رد می شدم با یه تاکسی تصادف کردم خوشیار بودم مثل یه قاضی. فقط دلم میخواست به این موضوع اشاره کنم هرچند یک کوچولو فکرم پریشون بود هول بودم یعنی بالای چشم راستم بریده شده که یه جوجه دکتر خوشتیبی که متاسفانه خشن و مرزمه بخیهش کرده وقتی که کار بخیه رو تموم کرد متوجه جراحت روی سرم شد بهش میگم جدید نیست به نظر میاد تازه باشه خب نه اونقدر که مال امروز باشه خب آره الان توی جنگی ما این چیزام عادیه نه خوردم خوردم به چیز به در ماشین یه چند ثانیه یه خوب سرمو معاینه میکنه و بعدش میگه که اینطور؟ میره عقب و به چشمام نگاه میکنه بعد میگه به نظر نمیاد اینطور باشه مثل اینکه که یکی با یه چیزی تو رو زده و من یخ میکنم. یه خاطره گنگی دارم که داشتم جا میدادم تا جلوی ضربه به سرم رو بگیرم. دستمو بردم بالا یعنی یه خاطره واقعه؟ دکتر دوباره نزدیک میشه و از نزدیک بیشتر توی زخم وارسی میکنه. یه چیز تیزی شاید دندونه دار. میگم. نه. یه ماشین بود. من خوردم به در ماشین. دارم سعی میکنم خودم رو متقاعد کنم همونقدر که اونو. باشه. لبخند میزنه و دوباره عقب میره. یه ذره خم میشه اونقدر که چشمون رو به روی هم باشن حالت خوبه؟ به برگه هاش نگاه میکنه ریچل؟ بله مدتی طولانی به هم نگاه میکنه حرفم و باور نمیکنه نگرانه شاید فکر میکنه من یه همسر درباداغونم خیلی خوب من میخوام این رو برای تو تمیز کنم چون به نظر میاد یه مقدار کسیف شده کسی هست که بتونم بهش زنگ بزنه هم شوهرت میگم من طلاق گرفتم پس کس دیگه ای اون نگران این نیست که من طلاق گرفتم دوستم خواهش میکنم اون نگرانم میشه بهش اسم و شماره کتی رو میدم به هر حال کتی نگران نمیشه من حتی قرار نیست دیگه توی اون خونه باشم اما امیدوارم که خبر تصادفم با یه تاکسی حس تره و تحریک کنه و باعث چه کاری رو که دیروز کردم فراموش کنه احتمالا فکر میکنه به خاطر زیاد نوشیدن این اتفاق افتاده. موندم از دکتر بپرسم بعد آزمایش خون یا یه همچین چیزی بدم تا بتونم به کتی متراکی برای هوشیاریم نشون بدم یا نه. بهش لبخند میزنم اما اون به من نگاه نمیکنه. داره یه چیزایی می به هر حال فکر مسخره‌ایه. تقصیر من بود. راننده تاکسی مقصر نبود. من به وضوح رفتم، در واقع به دویدم جوله تاکسی. نمیدونم از کجا فکر دویدن به سرم افتاد خب فکر نمیکردم اینجوری بشه البته فکرشو میکردم ولی نه در مورد خودم داشتم به جس فکر میکردم کسی که جس نیست اسمش هست مگان هیپفل و گم شده توی کتابونه خیابون تاوبالز بودم همون لحظه به مادرم ایمیل زدم نمیتونم هر چیز مهمی رو بهش بگم یه جور ایمیل آزمایشی آبکی بود. یه جور معیار سنجش تا بدونم چجوری حس مادرانش یهویی برام گل می با اکانت یاهوم تو صفحه اول یاهو اخبار جدید حوادث رو می نویسن. متناسب با آیپی هرکس یا همچون چیزی. فقط خدا می دونه اونا چطور آیپی منو رو می دونن. آه آه اما همه دیگه. و یه عکس ازش بود. از جسمت. موتلایی و برازنده بعد یه خط بالاترش رو خوندم که نوشته بود نگرانی برای گمشدن زن اهل ویتنی اول مطمئن نبودم به نظر شبیهش بود همون شکلی به نظر میرسید که توی ذهنم بود اما خودم شک کردم بعد ماجرا رو خوندم و اسم خیابون رو دیدم و فهمیدم پلیس باکینگهام شایر به شدت نگران بهبود وضعیت زن 29 ساله گم شده ای است به نام مگان هیپل، اهل خیابون بلنیم ویتنی. خانم هیپفل شب گذشته با شوهرش اسکات هیپل بوده. شنبه شب حوالی ساعت هفت به قصد دیدن دوستی از خانه بیرون رفته است. آقای هیپفل گفت ناپدید شدن او کاملا دور از شخصیتش است. او کسی نیست که دست به چنین کاری بزند. خانم هیپل جین پوشیده بوده و یک تیشرت قرمز رنگ. قد بلند، لاغر با موهای بلوند و چشمهای آبی. هر کس خانومی را با این مشخصات دید با پلیس باکین شایر تماس بگیرد. گم شده. جس گم شده. مگان گم شده. از شنبه. توی گوگل سرچش کردم. این ماجره توی سایت ویگنی آرگوزم مطرح شده اما با جزئیات بیشتر. من به نگاه جیسون، اسکات فکر کردم امروز صبح ایستاده روی تراس در حال نگاه کردن به من با لبخند کیفمو از روی پام قاپیدم و از کتابون دویدم بیرون پریدم توی خیابون درست تو مسیر تاکسی سیاه ریچل ریچل دکتر ظاهرا خوب داره سعی می‌کنه توجهمو جلب کنه دوستت اینجا معتله.